أعوذ بالله من الشيطان أبا جمد الصمد الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآلها الطيبين الطاهرين المنزومين لله دائماً جزاهم در مقدمات بحث اصول عملی خصوص اصال توی برایم مقدماتی ذکر شده هم در کلمات مرموم استاد که مدارشو خوندی و بردیش برده ایشالله و هم در کلمات استادیشون مرموم نایمی و بعد از مقدماتی در کلمات نایمی است مرموم نایم و هم در کلمات مرموم آغازیان چون مرموم آغازیان در اینجا به مناسبت اصول عملیه یه مقدمه ای رو به عنوان قصد زمین ساز و و در عین ها بحث ترابط حسول ترابط حسول با امارات امارات با علم این بحث رو هم بیشون مفرح فرموندن مردم آرزی ها که خب بحث بسیار مفیقیه اینجور بحث ها در حسول ها غالبا در جاهای های معینی گفته میشه مثلا این مقرد از نواسیشون تو اول قرد گفته شده یه مقدار از مقایسیشون در آخر بحث اصول عملیه میاد در آخر استثاب میاد جاهای مختلفیست و نکات لطیفی من اعتقاد دارم که نهره بحث اصولی جوری باشه که تقریبا انسان مثلا در خیلال یک هفت هفته به مناسبتی تمام ایک حالتی باشه که مثلا تمام حالت اصول دوره اصول منن برده امرکت یه اشاره به حفاظ مختلفش بشه که این حضور ذهن انسان تقریبیت بشه و محسوسا این مبارس این نصفرسنجی دنیا اصول و امورات و اصول بعد و بعد و اولا این مبارس انسان دقیقی تکرار بشه که حالات ملکه در انسان پیدا بکنه ثانی این نحوه بحث از در از کلم در کتب اصول اهل سنت نبوده مثلا لحظه حکومت ورود اون چیزی که در کتاب اصول اهل سنت و قدمای اصول ما مطرح بوده بیشتر همون تخصیص و تخصص بوده نسبه سنجیه بین دو دلیل رو همون تخصیص و تخصص. یا خروج موضوعی بود مثل خروج جاهل از اکلم علماء که این رو تخصیص می گفتن. یا خروج حکمی بود مثل لازوکمل آدم الفاسر خروج آدم الفاسر بروژه تخصصی. و مباحثی مثل حکومتها ورو مطرح نبود و از خلیم که دارن این لفظ حکومت دیگه این معنی حالا به لفظشا به معناش اوائه ما در اولین بار در کلمات مثل مرحوم محققه به اصطلاقی آمول مقاس به کراکی و بسالگاه نفسه آمده لیکن بعدها در کتب فقه و اصول ما چون اون بحث ایشان تکلیم نشد حتی تو جواهر کلمه حکومت استعمال شده و که مرادش شامل تخصیص هم میشه و اینکه که مورد مورد تخصیصه ایشون طبیه حکومتی این تعاویر خیلی دقیق نبود تقریبا میشه گفت مرموم شهرانسالی همولین که کسی که سعی کردن اینها رو یک توضیحی بدن روشن بکنن و محرم بسیار محرم خوبیه انصافا یک فهم غوشنیست که حدود مثلا سالی در اصول شیعه شده در فخشیعه وارد شده تفسیر بسیار است برای لسان ادله و بررسی لسان ادله با یه دیگر خیلی راه شنگی رفته و البته این شکل بحثی که مرحومه آزیاد اینه که مثلا اگه تونید یه کم کنید به انگلیسی ممکنه این شکلی در دنیا نفرمیشیم چی بخواد بگن یا خلافت هر حرف اما همین حرفا در دنیای قانون‌گذاری جلیل هم جایی توجه داره مثلا فقط فرقش اینه که ما در دنیای فقه از این روابته این اصول بیشتر در جهت کشف احکام استفاده میکنیم اما همین راه میشه هم انجام در مقام مسئله کارلمان ها در جهل احکام میشاره میکنه اگر اینها درست تحلیل بشه به درد جهل احکام هم یعنی مساله زنده است، مثاله به خوبیه بشنگیه. و چون مساله بلتیفیه من تو که و این چون دقیق هم هست و جدیده نسبت به دنیای اصولی در دنیای اسلام مختلف شده جدید بوده حالا لذا در اقل ما به این واده بکنیم چه قبول باشه چه قبول نباشه و زحماتی که در این جهاد مفرح شد از خیلی اون چی که تا حالا بود بیشتر تخصیص و تخصص بود، تقریبا از زمان شه ورود به حکومت هم اضافه شد من یه مقدار اول کلمات مرحوم آزیار میخونم از این کتاب نهایتون افکار که تقریبات تقریباتی بیشانه تقریباتی بیشانه تقریباتی بیشانه جزوی شاگزه رزوان الله تعالی از فوزرها و بزرگان علمای نجب که بودن برگیران آمدن مدفی بروجه برگون بودن تقییه شخصیت بزرگواری دیست همه آشون و کتاب بسیار نافعیه این کتابیشان چند تا تبدیل دیگه یا شاگرده دیگریشان ایشان مثل مرحوم استاد اونهای هم در منطقه اصول افکار آزیاد دارم می که دید قشنگ و مرتب و و تعاویرش با این که بازم مغلقه باز از خود کتاب آزیا بهده از مقالات منوم آزیا لذا غالبا ما ارجاعمون در افکار مرموم مرموم آزیا بیشانه خصوصا ارز در منوم آزیا یه ای این اواخر بر کتاب فواید و اصول که تغییرات مرموم نایی نیست حاشیه بر فواید نبشه کامل چاپ نشد یعنی چاپ خوبی نشد جز همین چاپی که فوارد رو در قابل جامده از این کرد هواشه آزگارم داره با هواشی منم آزگار شد چیزی که من ترجم میکنم نگرم حالا نفهمیدیم چون اون وقتا نایدیم که رو این آیه آسفی که هست نوه دختری منم آشان ترجم برد جدگردی کن پستیم خبر نداره. چیزی که عجیب خیلی از جهات عین حواشی المانوآزیا ایشون داره دیگه اثرات خودشه. اینم برام هم سرچوبه برای یعنی یک مقداری از این کتاب به قلم آزیاست چون حواشی که به قلم آزیاست نمی‌دونن کی اثر استفاده‌تون از دیگر شامل دای بلا فاصله آزیا فعلا دارا و نمی‌شن. شاید ما ازش سوال بکنم چطور شده که در این تغییرات یک مقدارش به قلم خود نارومه های اراقیس قدس الله سردن علایه حاله این و برای فهم کلمات آزیا از میکنم حتی بر جامعی میاد که با خود مقالاتم اختلاف داره در حال بیشتر معروف بوده خود مجموعه خویی هم دا عبارات آزیا رو میرم کم میرم زیاد نمیرم اسم هم نمیورم من بعض اسم نمیورم اما استادشون معاملینی شده قدایه حاله چون این مطالب, مطالب دقیقی تقریبا یک دور مواقع خجج رو ناظر خجج و اصول عملیه رو به عنوان مقدمات یکی از یکی از مقدمات ایشون هم میخونیم بعد به مردم استاد ما خون ایشون مقدمه اولشون رو شبه هده که ان المراد این مطلب رو هم اینشالله خواهیم توی بحث استثاب هم گفتن تو تنبیهات استثابی مناسبتی لازم روزلی همینه به شک گفتن مراد اشتر به اینجا حالا نیست مراد اشتر این که انسان یقین نداشته باشه یا اماره معتبر نباشه خب نباشه حالا اگر زن نم باشه زن غیر حجب باشه بازم شکیم این هست از من اشاره بکنم که این بحث ها کجا گفته شده و خیلی خوب ایشون یک نقصه شیم بل مراد من مطلب و خلاف یقین و مطلب و الواقع و عدم و انتشابی و عدم انتشابی درسته؟ مراد اینه بله خب نمیخوام همه مطالب رو بخونم بعد ایشون میفهمن که مراد اینه است که اگر واقع منتشف نشد یک به اصطلاح احکامی رو بار بکنن در صورت همین این کشان باره درست ایشون میفهم که هو هوا شن فی این وظائف ایک چیزش افتاده عملیه یعنی ما روش ایشون یه دارن و درست هم این نقطه ایشون مخوام که این که ما اصول داریم در ظرف جهل به واقع به اصول عمل میکنیم و اصول وظائف عملی هستن این غرفین هم است چیزی نیست که تعبود شرعی باشه یک امرو غرفیست در غرفی اینطوره که اگر واقع منکشفه آثار واقعه بار میکنن واقعه نداشته هم وظیفه عملی قرار میده. یه نکته ای لطیقیست من آزا چون بعد بکنم. این مطلب رو توضیح بیشتری در توضیح می ما در حد الان مناقشات ما با مرموازی ها در بحث خوندن یه عبارات مناقشات جوزی است یه بحث کبرویش شو آخر بحثیشون از میکارم امروز که به اینی برسیم پرداشم کما هوا العرفیه یعنی کما هوا شنف وزایف العملیه این در او عرفیه ایجی برمی این در جهل بالواقع فه اینه هون کما انه لهم فی ظرف عدم القق الوجیانی بالواق اگر پک اوجدالی نداشن طرقاً اقلائی یکن یعنی دون علیه هفی امور معاشه و نظامه و امتصال احکام موالیه یک طرق اقلائی دارن در امور معاش این مطلبی ایشان که در صورت عدم قرط خود خود خودشونیشون ذاتی میدونن خود جیدشون ازاد در صورت عدم قرط حالا یک اشتار ماه که قرط ما غیره هم فرد نداره هر دو اقلائیه چون سابران گذاریم تو بعد قرد گذشت تکرار نکنیم اما این کلمه یه ارسان از ها که امور معاش و نظام و امتصال احکام موالیه این مطلبیشان درسته یعنی مطلب صحیحیست و اون بحث حجج و اماراته ایشون بخواد بگه بحث حجج و امارات در امور معاششون در مباحث امتصال در مواحثی که مروض میشه به نظام اجتماعی و نظام قانونی حالا این نظام قانونه رو تو خانواده باشه پدر با بچه هاش بازن زن با شوهر شوهر بازن توی مقام جامعه باشه یه طرقی دارن برای حجیت این ایشان رو هم ما صابعا توضیح دادیم ما اعرض این مسائل حجیت مثل خبر باهه این توی علوم حقیقه اصلا نمیاد اونجا معنی داره حجیت من شما هیچ دانشمند فیزیک یا بحث خود جیهت رو مطرح نمی کنه بگه آقا مثلا اگر مثلا فرسان خلیز و حرارت دادی به مثال انبساد پیدا نمی کنه نمی چون فلانی گفت چون فلانی گفت نیست دوش. تمام اینها باید برگرده به به, به آزمایش و خودش و حقیتی که اون برای شواهد اقاما اون تو فیزیک تو شیمی تو تو سیاره تو اینها صحبت خود جیهت مثل این مطلب مطلب درستیه بحث حجیت باجهیت اس خبر واحد در داره عقل عملی نازل میشه خوبدفر کردیم. مباحث حجج و و امارات در داره عقل عملی است نه در دردارره عقل نظری مبث و جیه مثلا تو مباحث داره عقل نظری حجیت رو شما قبول نمیکن. بگیم شما کنان آ گفت ما هم قبول بکنیم. نه حالا میون گفت شما باید خود را نتیجه برسیم که مطفران شخص گفت این ارزشی نظر این نظر درسته. سابقا ما چند بار تکرار کردیم که مباحث حجیت اصولا در ظرف قانونه اصولا ظرف قانونه یعنی حجیت ولیذا چون در ظرف قانون نمیشه توی ذاتی تصور بکنیم این که بیگن حجیت ذاتی ذرقه اصلا ما نکته که در حجیت یعنی به عبارت دیگر این تبدیل که ما در اونجا مثلا کردیم که بحث حجیت پدیده اقلالیست پدیده است. نه یک پدیده فردی مثل مواحظی در بحوان شناسی هست مثل مثلا کنش و با کنش مثلا، عمل و حسون امر تو روان شناسی اونجا مباحث خواست خواهی جوگر بفرد. اما اینجا وقتی ما بحث و می‌کنیم یک پدیده اجتماعیست نه یک پدیده فردی چون این دوتا با هم دایه خلق شده مثلا در بجازه بر اگر انسان قصده این ماره قرار میکنه این قصد به دتر ماره فرار میکنیم به بحث حجیت ما ربطی نداره اشتباه نشه من علم عمل یا من علم عمل که در روز از ما مام این ربطی به حجیت ما نداره این دو تا حجیت با هم دیگه شده اینه که انسان یک کنش و کنش داره فعل و انفعال داره در مقابل امور حقیقی این ربطی به حجیت نداره یعنیم تو مسئله حجیت نیست حجیت ی و معیارش هم قانونه حالا پدر بپسن حالا اون جامعه کوچیک باشه مثل خانواده باشه قانون به قول موسیقی بزن یا مواطن قول ما شهروند شهرون. شهرون. قانون به شهروند این اسطلاح به اصطلاح این نقطه فنگیز این که ایشون فهمنده درسته یعنی از ها فی امور معاش نظامه امتصال افکان موالیه حالشون نظام عبید و موضا را من کردن میمخواد نظام عبید و موضا باشه عبید و موالی باشه میشه نظام پس کن پدر مادر زن شوهر و بعد دره تا نظام اجتماعی به اصلا جامعه خیلی استطراغ به در واقع این استطراغ هم که تعاویر من در آغربی آقون نجفی هست استطراغ این طریق قرار دادن به واقع جهلی طریق این استطراغ مورا بیده یکی ها طریق در واقع طریق به استثراف همونده و این طریق, طریق بودن علال که چون شون حجر خبر چون چونشون قادر حجید خبر سقدی سر بودن خبر موسط و باب زواهر الالفاظ خبر موسط حالا من چون انز کردم یه اشکالات و ملونوکتی روی مفردات یه اشکال کلی رو کلماتی ایشان تصرف داریم ایشان در این استطراف اون نقطه این این هم ما توضیح مفصل در بابه فقه کردیم این نکته ای که هرچی ما تکرار بکنیم باید حال ملکه در بیاد عصری در مکتب اصولی شیعه متأخر و كذلك در مکتب اهل سنت از جهات مختلف در یک جن. در مکتب اصولی شیعه متأخر خصوصا بعد از آمدن مثلا بهوانی یعنی خصوصا بعد از اینکه بنا شد که با اخباریا درمیافتند بعد از دعوای با اخباریا چی که در عبارت اینها زیاد مطرح شد حجیت ذاتی علم بود چون علم تریحیت داره کاشفیت داره حجیت ذاتی علم بود چون علم از هر راهی پیدا شد و خیاس اون حجت این اشهار این مطلب در و ببینیم که در کلماتی شیخ انساری دید این هم طوره این کلم داره شیخ انساری مدرسال لاسه ره در و توضیحاتو شما از خیلیم دیمون خواهد بازون بحث بشین و این اخباری ها یه سال. سالی که اخباری ها تقریبا مفضوع آن سفری اخباری حاکم بر حوزه ها بودن اونا حجیت ذاتی رو قبول نداشتن یعنی گفتن ممکن است شاره از یک نحوه علمی مند بکنه این بحث, بحث داقه این بود اخواره گفتن شاره ممکنه دیگه علمی که از قرط از بیا ها سکه حجت نیست او سویه گفتن محسن برای از کمین ها هم شکل که نه اگر علم آمد از هر سببی بود از هر تدیلی بود به حده علم رسید و قیاس هم بود حجت نیست به قرطه همون در با سرش و خود دقیق میکنی بعد از مرموم شیخ چون عباس شیخ رو خوندی در وسائل کمی ابهام داشت یک نوع مثلا خیلی لزوم عمل از طبقه قد این لزوم عمل به ذهن آدم یاد مثل همونی که انسانی یعنی یقین داره ماغه قرار میکنه اون فیل و این فعال اون حجیت نیست اون طبقه عمل به صورت ذهنیه اون حجیت نیست از طبقه اون یه حالت فردی اون ما توی کو هم زندگی بکنه اون حالات داریم اما این حجج دیگه محل کلام یک حالات اجتماعی سه پدیده اجتماعی این دو تا یکم با هم با فرق خیلی والا با هم فرق ما اخیراً بعد از مرحوم شکل بودیم بحث زیاد کار شد و چون این بحث بیر روشنشتر روشن کلمات و روشنتر از کلمات مرحوم شده خلافی حرفی مکثی رو که از دلیل به شم‌یام دار کلمات اعلی ساطع متعدد هست یعنی این اصلش این اشکال اخباریم هم همین بود که شما عرب سونیار گرفته. شما اصولاً تو اصول تو آمده عرب سونیار گرفتیم. این تو کلمات سونیام بود، از اینکه سونیها بحث عقل و مستمانت دارند. در عقل می‌کنیم تو بحث اصولی شد. ولی مثلاً مفروضان بود که اگه انسان قائل شد که لو جهتی، این دو مفروضانشون. چون از زن لو جهت نوشتند شده و بحث می‌گیرد. چون از اول که بحث کنه او سر زن بود می‌گذارد. ما مثلا با قییاسی ها و پیدا وقت ب ویدیووی ببح هم به بهتری بر. کسواری ها مص مطال توسط انداممه برای اولین چون اصول شییه به شکل اصول سمی ها همون ترکیب تویم شده باشه در دنیای شییه و برومعللا هستیه اصولی که معاممه سع منتظر یا شرره توصی نون خیلی در شکل و ترکیبش مثل ترکیب اصول اهلسانت نیست چرا؟ این موفق کلی داره؟ اما اصول علامه دیگه مثلا مختصر ابن حاجی و ها تمام خود معاله اصلا تماما رفتن رو همون تا در تقابه علامه بحث قیاسش به ذهن من بیشتر در معاله این کمتر، کمتره بحث قیاس قیاس هم عورده بودن در تقابه علامه پیشونی که ما قبول نمیم قیاس رو جد نیزم یه ممداری کلمات اصولی نهل سنت و در کهیت استنباط علت علت جامعه ذهب کرد. و هر حال. پس در اینجا مسئله این بود خود ذاتی قبل یک نقطه اختلافی بود بین اخواری ها با این اخواری ها زده اندامه شروع کردن اندامه و اهل سنت و, و که بعد از رهید بنوانی تایید شده در این مسئله مثل محوم شیخ در تنبیاد رضوع و رفتن به همون حرفی که اصولی ها گفتن در کسی اصولی قبلش شیخ هم هستن مثل مفاتی رو دیگر رفتن به اون تریم وقت در تقریبا که که گفته شده از خرمی بهترین نکته و زریفترین نکته و در تکترین نکته اصولی که قابل ترکه نیست اینه مثل من موازی من موازی ها اصولا حجیت و دارمدار کشف میدونه این نکته فرمی حجیت که یکه اندیس بخورشون در معاش و نظامه, نظامه این دارمدار کش. و اگر کاشف تام بود حجت تام کاشف ناقص بود حجت ناقص به خلاصی نظرین در و اگر کاشف ناقص بود لذا لذات براه همین تصور اگر دلیل از گفت این حجت این کاشف ناقص حجت چون مئیار حجیت کشف یعنی کشفش تام تصور مکتب فکریش رو منسجم فکر بکنی مکتب فکری رو همیشه بود منسجم فکر کرد مثلا به فکر آزی ها مرمای آی خویی دیگه بیشتر بود این جرته تصویر هر سواله به تصمی کشم در حجیت پس حجیت تدور و مدار که بیاد. اگر کاشفیت ذاتیست بسه ده تامنه بسه حجیت دیگه مرادش هم از حجیت ذاتی اینه. چون کاشف است، حجیت شده است. کاشیفت قرد که جلید نیست که پس مرادشو همینی که حدیت هم ذاتی که ما را اشکال که امرو اجتماعی بود اگر امرو ارفی بود ذاتیت درشون هم نمیشه مرادشو هم از ذاتی بید من هم روشن شد وقت طبق این تصور خود دقیق رو کنی طبق این تصور اگر یک دوی حدیت کاشفش ناقص بود ایشون میگه اگر شاره که این کاشف ناقص من حدیت کرد ببینی اون زراره حجت گردن این تفسیر قانونی اصلا مطابقیشون قابل ترد در محصای علمی اشون تفسیر قانونیشون اینه میگه چون حجیت تدور مزارقه تا با حجت کردن یعنی کاشف تام بشن پس اگر با حجت این کنایت که این کاشف ناقصه من کاشف تام بشن نظر دقیقی چی خیلی لطفی پیشون داره و انتصال احکام موالیه فل استطراب به قائلن واقعه یعنی جهر طریق به واقعه یعنی ایشون در بجیهت رو طریقه به واقعه تشت به واقعه این طریقیت این نقطه اساسیه که ایشون قائله این طریقیت رو فل استطرابه مثل خبر محسط چون ایشون قائلن این خبر محسط رو جیت داره ما هم قبول کردیم خبر محسط رو که وصول پیدا بکنه انسان وجیهه ظاهره است. و باب زواهر الفاظ نه الفاظی شاید شرط مراعاتاً آخرین الا ایشون در باب زواهر الفاظ قابل آل استتراح نیست. خود ایشان قائل نیستند تعجب برم چرا مقرر یا روی مبانی اخیر نه آورده. شما این توضیح رو چند بار اثرینید؟ ازم از مکاسه من تکرار می‌کنم. یه دوره اصولی واسه شما چیزا نصفه نیمه شروع بشه در باب زواهر الفاظ در دو مبنای اساسی وجود داره یه مبنای که نسته تا معروفه مثل شیخ و دیگران با این که زواهر الفاظ از اینجا از وجهاتی که زن به مراد میاره طریقیت داره به مراد متکلن ایشون رو جهر را این مبناه آورده چون زن به مراده این زن رو شاره تکمیل میکنه یکه تو خطه رو مراسلیم مبنای دوم این که اصلا ما در کاری زواهر به مراد یه میثاق میساقه و اغلاییست که گفت آب اگر گفت آب یعنی تفهیم این معنا کرده و طرف مقابل این معنی رو میفهمه تفهیمون متفهم. یه میثاق میساقه و اغلائیست. نه اینکه که ما بخوایم مراد ایش اگر گفت آب بیار ما مثلا در زبان فارسی کهلیش بیم با آب که یک معنی واضحی داره به بر تدیل آرم که منه اغرزنه اغرزن عوزن هم باز مفهوم و ارشیش واضحه. ما کار نداریم ایشون در قلبش کنه رادی ری یا نکرده ما یه میشه ها و آبیان میره تا مایه مایه میگره یه دار بنابراین این مبنا باب زواهر الفاظ از باب زن نیست دقت کنیم این که ایشون نوشه باب زواهر الفاظ این مبنیست بر مبنای دیگران اونایی که دنبال کشف مراد هست ما بگیم مراد رو در بیاریم. قبر کردیم این نقطه لطیفیه این فیال نبینا ما از کردیم اگر من تو اینکه توی بحث مشترک اگه یاتون باشه آقایون اینطور نوشن ممکن است استعمال مشترک در اکثر از من ها بعضی از آن دارم اعتراض کن خب ممکنه ممکن ممکن ممکن نیشه اشتار داره ما سر بحث امکان باز این واقع شده یا نه اون آقا اشتار کر ما توضیحات شهر این بحث امکان استعمال در سر اکثر از معنا از همان برمه اول و دو دوم از خواه های صدر اسلام اختلاف دارن و این جدید نیست این توضیحات فندی میخواد و اون سرش این بود چرا بحث امکان چرا اصولی این بحث امکان رو نزد سنیان مثلا که ما مثلا هم بسی این که ممکن است واقع نیست فقر راضی هم داره فقر موطن حدود 800 سال قبل تازیگی نداره اما چرا بحث امکان رو در اصول مثل چون شما گفته اند لحظه فیزیکی از اهدال دشیوشی. چرا آمادن گفتن یوم کنست ما رو میشناسیم؟ شروع نشده که گفتم آیا یوم کنی یوم نیست که از وقتی بود نه این نبوده نقصی نداشت. از که نبود سی شو زودی اونایی که واگذار بودن امکان داره، اونا دنبال این مسئله بودن که برای حدیث زواهر همون ظهور لحظه کار به مراد متکلم talking نداریم. دقت بکن کسانی که میگفتن ما به ظاهر لحظ نگاه میکنیم دنبال کشف مراد نیستیم خوب دقت بکنید ما چون دنبال کشف مراد نیستیم مثلاً بمثال این خلاصت غروب در واقع عمل قرب هیجان گفته شده به صورن گفته شده مثلا اهل سنت که طلا در حال هیج درست میذارن مثلا بخوام بگم ما دنبال این نیستیم که خداوند مرادش این خلاصت غروب چیه در ما میگهیم همین لحظ هستیم اگر امکان داشته امکان داشته باشه در اکثر از معنا امکان در این مسئله مصادره با بکو امکان داره تو تا معناه اراده بکنه من کار به مراد ندارم همین که امکان داشته باشه فقط دو دو مراده اما اونایی که دونباره کشم مرادن امکان براشون کافی نیست میگن باره مراد متکلمه کشم درافت کارون شایی شو که مثلا در یزار سی سال مثلا بحث اصولی چه دار امکان استعمال لفظه مشترن در اکثر از معنا ولی تو مثلا ممکن است اینطور جل بگی بگه, بگه سلاست و گروه چون ما حیلو طلاق در حال حیلو باطل میدیم اونایی که طلاق در حال حیلو درست میاد بگه اگر در حال طلاق هی طلاق داد سلاست و گروه هی اگر در حال تو، و تلاظ دو سلاظ این لفظ دوباره در دو قسمت فرمودید سر یکی که دو معنا هم امکانه سر این که به امکان اتفاق میکنن دنبال کشف مراد نیستن خود به کشف بکنید روشن شد ما دنبال کشف مراد نیستیم که آیا مراد شاره هم هی بودن تو لفظ قابلیت برطرف از عمران مثلا و این نقطه خوب بود دقیقه در باب زباهر الفاس این که میگن بحث کبروی داره و از زباهر مورد اساس بحث کبرویش اینه و این خیلی تأثیر بذاره یعنی ما مثلا بگیم همین که این لحظ ظهور در این معنانداره کافیه حالا شعره مقدس در اون زمان این معنان مثلا شواهر نیست که شاره اراده کرده اون دیگه دنبال اراده نمیرن اونا دنبال انعقاد ظهور برای ب خب من به این باب و نهره ها کزاله کان لهم اصول اون تعبودیه این که از کلم مطالب اصول عملیه ما قابل تره در دنیای حقوقم هست نظرم به این بود یعنی آغازی ها مخاطب ببینید اینه که همه اغلاییست در فکر کنید که اول به علم بجانی بعد به امارات و بعد به اصول خیال نکن اصول اصول تعبود شرعیست تعبود و اغلایی در سلوکشون در معاششون در امور اجتماعیشون در پدیدار قانونی او اصول تعبدی هم اعتماد میکنن اغلا به ما هم اغلا اینکه جهن. کان اصول تعبدیه و وظائف عملیه از خیلی بزنون اونجای وظائف غرفیه بله وظائف عملیه که زرف جهل به واقع و عدم اینکه شافی به علم به به علم به واقع وجدانن او به ما هم به منزلتی جهن و تنزین به منظره واقع است، به منظره علم است. یا علم یا به منظره بعد این تعملت ترا انهو لیسه لشاره. این نفته خیلی لکیفه اشون ما هم بگه شاره لیسه لحوفی ها در جع... جعله تأثیر جدید اگر علم و علمی بود بنا مراجعه میکنه نبود به اصول عملیه و ظروف عملیه این روی سیره و اغلا میدونه ایشون کردیم یک رمش رو اغلایی حتی اصول عملیه پس اصول عملیه ریش های اغلایی دارن و ایشون بگه بله ولی اصلا لیش شاره هم تحسیز جد... طریق... جدید و تحسیز خاصه ورا اماه و المعهود اندر عرف و اغلا حالا من گفتم ایشون نازر به مقام استیعاب یا نه من اونو الان نمیتونم به ایشون نستاد دارم ایشون میگه شارج همون راه ارفیست فی موارد طلاقه هم و حصوله هم من و اعتباره هم یعنی من و انها میعرکده رون اعتبار بخون اگر اعتبار کرد مکشوفیت الواقع فی مقام موارد قیام طرق این است که برام مخشوریت واقعا من یه بحثی رو بیرون از مجموعه های دائمی عرض کردم از که اصرار اینجا مقرر شد مثلا توجه نکرد کاشبیت رو با نگاه کنه مخشوریت از نظر فنی من عرض کردم یک مثالی رو در درسگو داشتم عرض کردم مرهم بجنودی سماهن از ایشون شی از مرحوم داهیوی قدس الله سرهوا که در کتاب خود مرحوم عین هم نمیدونم فواید نمی ولی یک جای چه مصالحه خوی و جان ناقصه وانه خدا رو آره تو منتها نخواهد اما از این چهجوری میشه شرفاله شو ما تو توونه بیا از مرحوم نایینی که عرض کردم که اگر انسان اشمارش شباه عرض می کنه اگر انسان قرض پیدا کرد در مورد قرض پیدا میکنه چهار نقطه پیدا میشه این که اینکه یک سطح خاص اینکه یک از واقع داره اینکه واقع مشو به گنه اینکه عملی به ترگیر رو هم داریم بعدشون می اگر اماره محاسبری باشی مثل خبر باهه در سه جهت باقیه که اون صفتیت نداره خوب معلوم قدیه صفت خاصه نفسانیست در صورت زن نیست اما کاشقیت از واقع داره یا انتشاب باقیه هم داره جره اماری هم برسر با اماره می این دو تا جایی که اصول تنظیری قیام می کنن صفت نیست کاشقیت اما اون چون فراره بین امارات رو ولی دو اصول تنزیل رو برزفت میگه در مثل استثهاب در مثلا میگه فرن نگه کن تهلا یقینم به موضوع این نگاه رو میگه حالا وضو داره ببینی یعنی واقع رو میگینه در ما به استثهاب این که شاپ الواقع هست اما کاشف میگه این هست لطایف تفکیر من رو نمیزیم از که هم شاپ در این ظرف بر جریع عملی هم بر طبق استثاب میکنی من در اصول غیر تنظیری مثل احتیاط یا خود براعت فقط جریان عملی چار حالت رو ایشون اثر رو برای قرد تصابن میکردن سه اثر رو برای امارات معتبره دو اثر رو برای اصول تنظیریه و یک اثر رو برای اصول غیر تنظیری این تنظیری که اناکه نزمه هست پس اینه که ایشون بله ای مکشوفیه مسئولیت این دقیق نیست در باب امارات کاشفیه دلوقع. کاشفیه الواقع نه مکشوفیه مسئولیت واقع رو اگر بخوایم دقیقاً در اصول تنظیمی مناسب بگم ترمونتصب خیلی خوب بسیار خوب و اعتبار این مسئولیته او اعتبار اضافه به فاعل شده مسئولیت مفعوله و اعتبار این مسئولیت فی موارد اصول این قط در همین را رفته و اخبار مسئولیت اون مواد اصول و ان الحكم مشغوله فی مواد الاصل انما کان فی ذرف شک بالحکم الواقعی بله این تا ایجاد برنامه فلان باشه بعد اصلا که اگر مراد ایشان استدراء باشه یعنی همه جا اصولی که شارع تعبد کرده عین همون یا اصول یا امارات عین همون که در هست و این همون این روشن نیست این مطلب مطلب روشن نیست من در ادهی از مواقع همینطور درست در ادهی ما و ما یه توضیحات رو از کردیم یک این که اصلا مواقعیست که سیره اغلاسیری داشته باشن در ظرف مسئولیت واقع واقعی فریبی شن. در ظرف جهره واقع و عدم انکشاف واقع و عدم کاشف برای واقع این معلوم نیست این مطلبی که ایشون فرمودن همه جا اغلاسیری داشته باشن بلزه اگر یاد اون باشه ما یه توضیحی کافی ارثاریم تو که چون رحله افیتیه که بحث اجزا است چون من در کتابی که فراهم کرده استصحاب اساطهار و نحوه ما این نحوه ما که اونجوری باشه که کارو مشکل کرده توضیحاتی در عملش که مثلا میگه اینجا بحثی دوره اصول یا چیزای خوبیه ما از کاری در اونجا آیا در باب اصول یا در باب امارات قابل اجزا بشه یا نه که اول توی قاعده نشدن در مصالحات ها و معرض حساب پیدا شده در ها هم حساب پیدا شده تا یک نوع امام داره ما در اونجا استصحاب قبول نکردیم اما اساس ها رو قبول کردیم توضیح اونجا ارشد کردیم اگر یک اصلی عقلایی باشه همینطور که ما واسیا بود خوب تبر وارده در اونجا اجزا معنا نداره چون یک چیزی عقلات شرعا و همین سیوها جعل خاصی نگرفت معنا نداره استفاده چون جن نگرفته شده اما اگه در جایی اصل شرعی باشه خوب دقت بکنید ما در بحث ایزا این تحصیل قائل شدیم اصل شرعی باشه اینی که ایشون میگه همش اوغاله نیست مثلا اساس و تار اصل شرعیه ما اصل اوغاله اینو که از ذی تا همه بگیم که از اوغاله بدید یا اصل باشه بگیم که شما هر چی شک بکنی این پاکی ما هم که اصل بعد اصل عدم داریم اصل عدم به معنی واقع به معنی مقام علم مثلا, مثلا, شده شده. مثلا میگه اینکه چیزی شده میگه نذار یا طور پیش مثلا تا شیشو قهر کرده مثلا میگه نذار نذاره یعنی علم نداریم یعنی واقع نیست نه معنی اصل عدم در واقع در معنی واقع اصل خدمتونه که بعد هست خود استطاح هم بطور عقلایی سر نظر ما اما اصل نیست نه. و لذا عرض کردیم چه که ما اونجا در بحث عرض کردیم گفتیم اگر جایی باشه که عرض تعبودی باشه قاعدتاً باید اجزا قاعد بشه این نقطه فمیلی تا چون اگر عرض اقلالی نبود شاره آمد تصرف کرد این شما میگرد منان عرض ما الان این نحوه جمع و تصرف رو در مقام به اصلاح این کش را از احکام مقام استباده احکام میتونه اما شما همین کار را در فرصال در پارلمان اگر باشیم قانون گذاری بکنید همین کار در پارلمان انجام میفرمون میکنه. در مقام ابدال در مقام بسا فعیلی فعالی خودتون ابدال بکنید خوبتون. یعنی ما میگیم اگر یک قانون آمد خودش یه جعلی کرد که این اقلائی نبود این باید قاعدتا این جعل یک تکاملی برش بشه و اون نکته اینه که باید ناظر به این جنای دیگه ش بشه نه ناظر اصلا باصله مثلا یکی گفت کلهش انثاره این باید ناظر به چی باشه ناظر باشه به لا صلات الله بشهور و ناظر هم باشه یعنی این فهم اوگلاییست نه اینکه یک تعبده خاص اما داروی خوبی رو نکردند ما در اونجا توضیحاتش ارشد کردیم غیر از که ناظر باشه و این اختصاص رو ما هم نداره ها و اینکه اخباریه که به زواهر الفاظ نگاه و همیه استثاره کرده خب میگم استثاره ارفیه نگه آنکه که ما توصول میگیم سوال هزاره هم بیگه از این مثلا اصالتاره میفهمی که اگر نماز خون با اصالتاره نماز درسته ولو بعد تحمیل نجازه خب دقیق چون وقتی میگه کندوشه نظیب یا کندوشه امتاهر از اون هم میگه لا صلاة الله به تو خب دقیق و محفوظ آلا من نمیده این چی مرادشم مثال دیشون میمتون بدم تمام اصول ما اغلایی نیستن ما یه اصولی داریم که تعبوزی شارع جعل میکنه اگر شارع جعل کرد اگر شارع جعل کرد قاعدتا ما اینطور میگیم وقتی مقام جعل آمد باید ناظر به بقیه جعلش باشه باید ناظر به بقیه جهر ها باشه وقتی گفت لا سوال تایلا اون کلش این لك نزیت میاد ناظر به لسات الله و بشه. اگر اوغلای بود چون جاره جمع نکرده شما رو اشتاد به ارشاد رحمان از اونی که شما جعل در بیرید به نظر در کفایت این استصحاب و اسافه و نحوه ما اونجا ارشاد کردیم استصحاب چون قبول نکرد اینجوریه به نحوه ما. چون استصحابی امر اوغلای شما اصلا بنای اوغلا و این هر چیز استصحاب ما که ارشاد تفسیرش بعد از کارو پس بنابراین یک نکته اینه که اگر شاری اصر رویشون ظاهر بشینه که تمام اصول شریع اصول اقلیس نه اصول و نه. از اصول اقلیس نیست این یه دو ما یهن به یک مناسبه دیگه توضیح دادیم البته راست توضیح مفصلترش دیگه آخر بحث اصحاب تنگیاز اصحاب در خاطر اصحاب که منو شیخ چون شون باید تجاوز و آقا شیخ اونجا آورده قاعده تجاوز مزافراله باذ فراغویی معلومه آیه خوی اوغلایی میشده اماره میگنه میگه اوغلا برنامش اینه که اگر یه کاری تمام کلا دیگه ان و لزام ایشو تغییر میکنه که حتما با درین عمل منتظر باشه ایشون از این جهت مخالف مشهور مشهور گفته اگه مثلا بعد از نماز شکر نمازش درست در درین نماز منتظر باشه یا نباشه ولی منتظر نناشه نمازش درست. آیه خوی میگه نه درین عمل باید منتظر باشه حالا من خرده اش نمیگم و ایشون میگن اوغلا هم همین سیره رو دارن، لكن اوغلا سیره شو در جایی مختلف داشته. و درست هم هست مبنا ایشون درست. یعنی انصافا ما یک اصل اوغلایی داریم. اصلش هم تنزیبیه. همین اخیراً به توضیح، حالا بر توضیحش بعد هست. اصلش هم تنزیبیه. چون اصول غیر تنزیبیه نیست. این نکته درست. باشه ما حرف با واقعیه که درست سیره اوغلا مواضع التفاصله. اینم درست. اگر بحث اشاره ای اند که شک و پیشه این را به ادا جسحو یا ادا طرف من تشقق لیز بشه دایره تعبود اشاره از دایره اغلایی اوسع بگذره دایره اغلایی در صورت انتفاسه دایره تعبد اشاره اوسع در اعتبار است ان شاء الله چون زیاد بشه بحث بودش یکم لحظه من رخ خالصم و به دوماق ورصدن کویه‌در وصول لا به اطلاق بالای حضرت ایشون چون نواص انسان لطیف و ظریفه ما بیشتر از اون رو از لغت قانونی روز هم مطرح بکنیم که کاملا زنده باشه این صورتی ممکن اختلاطون کسی مورد است